شریعت کی سودمد جلد دوم مقدمه شریعت کی سودمد ضحفے باستانی اکنکار دانش کهن سفر روح است که برای نخستین بار در معرض استفاده عموم قرار میگیرد. این نوشتجات حکمت زرین که همواره در جهان‌های معنوی پنهان بودهاند اکنون برای نخستین بار به زبان بشر ترجمه و انتشار میابند این کتاب بخش دوم از صحیفه شریعت سود ماده است که توسط یاب ساکابی استاد عظیم و اک در معبد گرهی در شهر معنوی آگامده واقع در کوه هیمالیا به من دیکته شده است شریعت کیسودماد شامل حکمت و علم است که به طبقات گوناگون جهان های معنوی تعلق دارد. این طبقات فراسوی عباد زمان و مکان قرار دارند. خواندن و آموختن این کتاب که از والترین الهامات درونی نشعت میگیرد بینشی بینشتی از تمامی مکتوبات مقدسه معابد حکمت زرین را به آدمی ارزانی می دارند. جوهره دانش الهی در این نوشتجات تعبیر شده است کتانی که از طریق اک پیروی می‌کنند، کنند شریعت را کتاب مقدس خود و منبع الهامی لایزال می دانند. تمامی جهانبینی های دنیا در خصوص ادیان فلسفه‌ها و نوشتجات مقدسه مشتقاتی از شریعت کیسودماد است